فیلم. قصه های مجید سفرنامه شیراز قصه های مرادی کرمانی به روایت کیومرس پور احمد بازیگران مهدی باغیر بیگی. بیبی، مادکن مرد شدنا. حسنا. زنده‌یاد پرین دختر یزدانیان. او که اصلا امکان نداری راه به ای دوریه به تو بیساق کار بره و جهان بخشی سلطانی. اجله داره. ارگولیزه هم به سر کوی دن زن. نمایندگی فیلم نامه تدفینگر و کارگردان کیو مرزه پور احمد. نشسته و مشغول کوبیدن چیزی توی یه هاون سنگی بزرگی. مجید از توی اتاق اومد بیرون. مجید دارم. صدایی که توی آفتاب آبی به دیدار پاییز سر بیبی، بی خدمت مادر بسیار بزرگوار و مهربانه، و خواهد زدی عزیز عزیزم مجید پس از عرض سلام فراوان خدمت مادر عزیزم از اینکه دیر به دیر برای شما نامه می نویسم واقعا شرمنده. باور کنید آنقدر گرفتار زندگی روزمره می باشم که. بایی خودم را هم فراموش میکنم به هر حال امیدوارم مرا ببخشید و هم بر غفلت و خدای نکرده بی از اینکه تابستان گذشته به علت بیماری نتوانستم به اسلام بیایم خیلی ناراحت هستم و دلم تنگ شده و حالایم که امکان آمدن نیست مادر جان می دانم که شما از سفر به شیراز چندان دل خوشی ندارید ولی امیدوارم بدیه ما را به خوبیهای خود ببخشید و به این فرزند دور خود سری بزنید من به تقویم نگاه کردم چهار روز تعطیل پشت سر هم دا هست و اگر مجید هم به طمانت دو روز از مدرسه اجازه بگیرد می توانید به شیراز بیایید و دیدارها تازه گردد. زمنان مبلغی توسط آقای رحمان فرستادم که انشاالله به دستتان رسیده باشد و به تمانت مقداری گرگوشای شما باشد در پایان برای مدید عزیزم آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که به تمانم برای عید نوروز از خزالت مدید در بیایم با امید دیدار شما در شیراز رضا خوبی بی. چی مو یه یک چی این که نبیشته از موسافره تو شیراز دلی خوش ندارم ببین، حالا بیا بریم، خیلی دل خوشحال میشه میدونم خوشحال میشه، ولی به نراحتی بعدش نمیاد. ببین، بی خب بیایم بریم حالا خیلی بی, بی دایی خوشام شدا بابا جون اینقدر زنش بدی میکنه و از این میکونید که دای خودش در خودت خشیمون میشد اینقدر اصرار نکن بابا الان یه کارش میکنیم به تا بریم یا میگی حسین ما زنم سن دردی کمر دردی بیام بعد ما بیام یه ماما کافات تو یه کارش بکنین یا بیبی بابا این یه که بیبی زنم چته خو رو که از یہ هاونگ سنگی بیرون میاری توی یه الک می‌نیزی و اونو توی سینی الک می‌کنی. جماعه این دسترد و چقدر درد داره. هیچی. فهمین؟ همین یه وقت تو شده و من خودم ازتون پرستاری می‌کنم. تو خودت پرستاری می‌کنی. من خودت ببین، چه هنیش آخه چهار روز میریم بیبی یه حمای به دلون دلت شد ولی یه دنیا قصه بی بی خود یک کارش میکنن دیگر بی بی کارش میکنم بارون اون بگیر یا حبه از تنور نانوایی نان تافتون بیرون میره مجید توی صفحه نانوایی ایستاده ستا نان میگیره و میره یه ماشین باری سه سچفخه از کنار مجید رد میشه بیبی بی با یه گالون پلاستیکی نفت به طرف بشکه نفت گوشه حیات میره بیبی بی مشغول خالی کردن نفت میشه بیبی فکر آدم را کرده این؟ چه فکر؟ رفتنه دیگه نه بازم میگم نه بازم میگم نه خب بیبی بی اگه شما نمیریم قلموزه این من برم او که اصلا امکان نداری راه به دوریه به توی سرپرسته بذارم برم بیبی من حتی که مردی شدم هزت مرد شدی و منم مردم و نبودم هر کاری میخوادید بله خالی هم نه. به چا هم سن و میگم نه بازم میگم نه بی بی به چا هم سن و سال من خارج اینم اشتباه میکنم اون پدر ماده دارن سفره سرن من سرپرستی تو هم میگم نه بی بی تو خودت دعوتو مصاحبه چند همزه که تعطیله در حق ما زور نكن مثلا این دارم چیکو نم یادم رفت دست در دیوارش چطور بوده همش وقت همین تو همین شبشین تو همین خونه باشین از اینجا مدرسه از مسجد بیای خونه از اونجوری مسجد بیای خونه همینا همینا هم. تو این خونه که یه تلویزیونی نداریم یه رادیو زاپ کناری هیچی چیزا نم خوامم جونم آرزو دارم حداقل بزنم برم شیراز یه خوده دارم وام شده ببینید همش میگه روز چه میخواسم؟ شیروز شیعه... پاسدار. پاسدار. هفته هف دوم هشت سوم. دفتری تا آوانی موساف. قبلا خشید خودمش یعنی منظورم نیست که هم ماشینش خوب باشه، راحت باشه، شوفرش خوب باشه. قطعا اینا چه تصور دوست نداریم. بعد، بعد سلامت کو. وقتی با از همیم معمولی است فرق نمیکنه. اما شام از همیم. بعد، بعد. باندرا پاسدار آقا هم هشت حش چه پای شما من خودم تلک نفر بله خودم تلک نفر رادیف دومو میخایم بفرمایید نه رادیف اول بده وقت ما رو نگیرید تا چه؟ آقا, آقا دور بده دور رادیف اول دو فوره بوجا رادیف دومم هست سنده 5 6 7 8 خب آقا دام 5000 بده جان پنجره ما نداریم وقت ما رو نگیر رادیف دومه آقا آقا شما بعد آقا. آقا آقا از اون کسی همونی ولی دوچنده بالاست اما اگه وقت مار من اگه من شرمندهم اگه شما من نیست برام همه من شما حالا کجای ما فاسدی زن جانتا و زایزور فاده داری با با با سانه تو بیت دامی سان آقا بهش فقط پانزده ازیاد نکردم پوشش من از ایزام تاونی یه یک تره داره لطفا من جلو برغلب حنجره میخوام میگوّ اول پره. بخش میشه خوش و کم به همون سند در استیجیابان تول پر بگیرم میکنم ترشی ها که میخواد ببری برای دادا دادا تول خیلی میشدن دستم دادا کنه ببینی بی. شیراز ببینید شیراز خوب ان شاء الله خوش بگذره علی بی خوشگذرون بله کردن خوش, خوش میگذره ولی خب که میخوام بیشتر من خوش بگذره لا یختو سوغاتی بریم بخریم دوتا تا حبه گاز میخیرم ببر دیگه چیکار کنم حبیبی گاز که خودش داره سوغاتی حرفشو نزید مجید اصلا پول نداره دای خودش برام پول میفرستت من وقت برم می پول خودش برات سوغاتی بسون بسسا بی درسته است که دای لوتس فقط برای ما پول میفرستن ولی خب اون جا خودش داره منم کی میخوام برم شیراز به سوغاتی بخرم اینا تو خودشه یا نه بله بی, بی. ولی خب میدونی اگه من دست خالی برم شیراز زنده پاسواره پول سر ما چقدر حرف میزنه زنده حرفشو میزنه کی تو سوغاتی ببری یا نبری دو برابر میزنه بیبیش شما که لوت کردین گذاشتیم اجازه دادنی من برم شیراز اینم دیگه یک کاریش ایش بکنین من پس اندازم آمیدم به شما خب شما هم یخت پول بزنید روش به این ستاعت و سوقاتی بخیر تا من دستغال نره خیلی خوالد من فکرام بکنم تو هم بر به کارا برست تا ببینم چیکار. چشمی بیبی با چادری سفید خوش رفت خرید الان بیبی و مجید با هم اومدن خرید به مقازای صناعی دستی فروشی میریزن بیبی خوب سیجا بزن دفت قایه و ارزنده رو اصلا اصلا اینها درد نکوری بلچی بی چقدر قشنگه بی بی اینش درد نمکوری. اینا کار نمکوری بی بی بی زود از جا دهر میری بی حیف حرف دونیم یاد ببینی چقدر قشنگهس وقتی من میخوامم شیرازو و یه چیز بخرم که ارزش هنری داشته باشه هنری یعنی دستی بیبی ما چرا باید باشه که بتونید استفاده کنید یا داب پای پلاستیک برای زنده می این خوبه بیبی یه, خوبست بیبی یه چیز مات بخریم که بتونه پاش کنه من نمیدونم دیگه میتونید ببینی زیاد سخت نگیرید دیگه من بالای چیزا پول من تو تو به گفتم بیبی اینجا این داخل مغازه خاستن اولش. باشه اینجا سگاریه ات شوی شوی. میتونم بیام. بیبی من خواب برای دعای بخیر. چیز که برای دعای میخیر بخیر بچه داری دعایی خوردی. بیبی یوسف پول داره. داره. لاتا گوریش داره داره ولی بچه دردش میخوره. می‌خوام زره رو دکور کیفم کنم. من چی چی کیف می‌کنم؟ کی حاصل داره کیف کنه؟ پول بده یه چیزی بخره که به درد بخوره. می‌بینی دوباره هر... کی یادتون دو رفت که آوارو نری نه, نه یادمه. پولم آه. که میدم یادمه ولی پول, میدم. پول میدم. باید یه چیزی بخرم که بتونم استفاده کنم. ببین چقدر سخی نگین اینا چقدر قشنگه. بله هر کار خودت می‌خوای میکنی. هر چی خودت دوست داری می‌خوای بخری. منم به دو تا ماله باستانی کوچیک چوبی اشری می‌کنم. این چقدر قشنگه. آقا خب ببخشید گورو داره قرمزه رو می خواهد که آمدی کنه رو الان این هم برا بهروز بیبه چه درد بهروز مخوره؟ بیبی چون اولا که این اصباب بازی، به چه کاش بازه میکنه سرگرم میشه دو ممندش بیبی چه دست لباس برش مخید؟ یه دقیقه میگم این وقتی که از الان با این بازی کند آده میکنه از آده بعدش, بعدش. بیبی جون بایسین بزرگ که شد و میشه. رو بواد مادر خراب بی بی؟ یه دونه که خراب خرم دیگه خلاص. <تصفح> یه تبل زرق کوچولو هم برمی‌داره. مجید مشغول بستنی چمدونش. سوغاتی ایران که خریده دور برش چیه؟ برای زنده ای یه جفت دمپایی سنتی پارچه قلنگار خریدی؟ یه آینه چوبی دردار؟ یه زیر سیگاری با طرح سی و برای دایی؟ یه تبل زورخانی کوچولو؟ دو بسته گزر. بی, بی اون لو هستان یاده نره <تصفيق> نه خوش می نزارم از. مرژی. ولی. تو روشی مالی دایی. ولی. بهش تو روشی مخصوصی تو درست کردم. ولی. قلپره هم دیختم توش بهت میسازه. بهش بله زنبه گهر رو معرض بکنی. چشم. خودت بخور. چشم. بیا بذار یک جا که نهریزه. صاف, چش. صاف برداری. چاش. او گوشه موازه باش خودت تاریخ خود دارم بکنو کارا دارم این که زنده بله میبین ولی خوب چم اسمون رو زنده بسه این هم زیاده ببین ببین چیوی رو میخوری میبین ببین قشنگی چشن آره این خیلی قشنگی آخو بله, بله میبین این طور به دیوار یادگاری میمونه نه مال دایی است این ناکنی 33 پول دایی انتونه بکنی دست سده نکنم بچ خودت که بله ببین هیچی که مثل من نیمیتونه بخیر این هم منی تو را بین بله. بینی بخوری بله. که بیرون چیز نخوری یکی سه مغز گردو و انجی رو خوشبون دو تو تخمور و نانی سنگک برای نهارش اینم هم نهاره. این نهاره دونم بین نهار و شام هست هر تشم. چیزی چیزی بیرون نخوری مریض نوچیو یکی سفارش ندارم گذار بیسته اونا رو بزن تشپیز اونا رو بز مجید زیبه ساکو می بند بیبی بی من میرم این جا و زولی جه باید سکار یه دو تکه کار بردو بیاد بیبی حالا بعد می نمیسیم بردو بیو یادم میره یه کار بردو بیاد یه بست کاغذ سفید میده بی, بی بی مجید میده خودکار میاد اینو رو چهار تو تکه کن برای چش بی بی چهار تو تکه کنی ادرست دار رو چهار توش بنویس هر یکیش رو توی جیبت بذار به چه ساکت بذار خیلی بارد این بی بیا. مجید بلیط به دست اومدی دمه در چوبی و قدیمی خونی همسایه شون می؟ رفتنی شدم رفتنی شدی؟ بله سلاف کنه لبارد میوید مجید کپشن شده دوستش دوستشی کپشن بچه ارمان شکلیه مجید کپشن خودش رو میگه به و کپشن اونو میبوشی بیا اصداده خب بره بمیاد آره خیلی همید میو مجیدی يا اخ پدر نیست خب که نمیشه خودم بخرم اول خب یا رو خیلی آفتابی بزرگ زدی رو چشمش و مثل هنرمندپیشه‌های فیلمای یواش یواش میاد توی حیات خونه خودشون درن درن درن درن درن درن درن درن بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بکش تو تو بینی مشغول خدمات کردن سیب بلیم، بلیم، بلیم. مادرت نه از کجا بوده؟ بیبی. اول خوشیپ شدم یا نه؟ نه خوش تفی به این صدایی. نه چی؟ بیزدش سام گرفت. برای چی گفت کردی؟ بعد بله بیبی، بیبی اینا بزنیم اینا چی تولمیشی؟ چرا همچین چی رو بزن؟, بزن؟, بزن؟ اینا بزنیم بیبی. اینا که افتادی رو میده بی بی این ای که من نیمی بیم باید. بیبی نیمی. بزنی بزنیم بزنیم. آه چی می دونی یاد بیبی؟ می‌تونیم بیم باید. اینا کی بینی بینی بی رو میزنه به چشمش اصلا نمیبینن نه؟ بقول نه اصلا لباس لباسا بتونیم یا چیزی قرضی که به آدم نمیاد یعنی چه چی چیزی قرضی می خودت لباس نداشتی خب بیبی میخواستم برم شیراز گفتم بز خوشتیب باشم به هر کی بخواد مسافرتش باید خوشتیپ باشه خب بیبی رفت خود دایی مو خوشتیپ باشیم اون باشه لباس خودت خیلی خوشتیپ ترت کرده بود تا اینا شب شده و از توی حیاتی نور ضعیفی از اتاق پیداست مجید با قلم درشدی روی یک دفتر جل کاغذی شهست برگ می نویسه سفرنامه شیداز ساکو بر دفتر رو می تو ساک خب این هم زین؟ مجید یک کتاب جلو روش گرفته و شعر میخونه کزو <متحد> ملک ایران بود افتخارش کزو ملک ایران بود افتخارش اگر اگرچه از ره سورت جداز شیرازی نمیشود زخیالم دمی جداز شیراز نمیشود <متحد> زخیالم دمی جداز شیراز الان کتاب تاریخ دستشه. آزار وکیل یکی دیگر از آثار معماری کم نزیر شیاز میباشد که از دو بازار تعاوته تشکیل میگرد. تو بازار متقاطع. آه. از بناهای دیگری که حاضر اهمیت هنری است مسجد وکیل میباشد. آها. مسجد وکیل. جنزم. جنزم. در مقرب نارنجستان امورت مجلل و زیبای دیگری است که از لحاظ صنعت آینکاری نقاشی کاشیکاری گشباری شوبکاری و منبث سازی آه چقدر نفاشه محمد حافظ خواد شمسدین محمد حافظ در ورود سال 726 اجید قمری در شیارت در اون مصفیه از کتا می که عکس آرامگاه حافظ در اون دیده میشه. شه مجید میده توی خیالات و خودشو می بینه که کنار آرامگاه حافظ پشت سر هم مشغول عکس گرفتن. از خیال میاد بیرون ولی دوباره خیالاتی که کنار آرامگاه سعدی و همینطور داره بشترم عکس میگیره. اونم هم چی با عینک دودی و کابشن چرمی. بیبی بی توی همون آتاق خوابی ده مجید همچنان بیدار نشسته توی رختخوابش. ساکش ساکشو با هم اخته و داره دوباره وسایلشو میچینه تو ساک یه ساعتی رومیزی هم کنار رخت خوابشه ساعت یازده شب. ساکو میبنده و میزده کنار حالا بلیتشو شو نگاه میکنه. ساعتو بار داره در ساعتو کوک میکنه. مزیج بخو، بخو. بخشی بی. حالا کتاب جغرافی رو برمیداریم و به نقشه نگاه بکنیم از و اگره و مردشت شیراز مم. مم. از اسفهان نایین و بیزند و و لامبه اتاق خانوش مجید درست شدی تو رخت نگاه دوباره پار میشه به بلید نگاه کنی به ساعت نگاه ساکو باز بکن. مجید بخواب ساکو دار نکیو ساکو میبرم ای وای مجید خوابش نبیبرم از اتاقونی دیرون میره تو حیرت قدم بزن با میستر روپله شما شیراست بی بی بی داشت. اومد در اوتا با تحجیب به مجید نباه میکنی بی کاش که به هم بیگه می رفتیم شیراست با این طوره هم شما تنان هم ببینید به خواب صفح هم صفحه همه سریح هم باشید بید خوش بگذید رو توی آتاک مجید خواهی بیدار شو. بی وی بی. نمی‌خواد مجید دست و کاپ شامپو اومد دم در اتاق، رو مارهای عشق توی قفس میگه. خب دیگه خدا افس. تا شاعر چه میگه؟ اگر چه از ره صورت جداز شیراز نه گرچه از ره صورت جداز اسفحانی نمیشود دمیز خیالم جدا اسفحان بیبی بلی تو نگاه میکنه میذاری تو جیب کاب بیبی از اتاق اومد بیرون با هم به طرف در میره یه باد میپیچه توی حیات و برپای کف حیاتو رو میپیچونه به همدیگه اونا رسیدن به تعاونی مسافر بری اتوبوس میهند تور آماده حرکت بیبی مجید رو میرسی قلاف، خیلی، تنگی شیراز بفرمایید سوار بالا اساس به بالا به سایک مجید دفترش از توی ساک بیرون میاره و ساک میدی به سا که رانندگی بذار صندوقه. بفرمایید سوار. رو صندلیش که کنار یه فیلمر سریع آقا سوارش بشید. بفرمایید نفر داره رو از مسافر میگیره. بی بی از کوچه شیشیه اتوبوس برای داری پر دارید پارک بدم. مجید. آدرس آدرس پارو. آدرس پارو. آدرس شيرات. آدرس شيرات وارد سفارشو. ما وعده میدم که باش. از اتوبوس جونامو ندو. گازو نخور تو را. گازو خیلی خوشم. دو تاتون با هم بگردید. مجید. ممنون خیلی سلام برسون. من چیزی گفت جواب نده. بهروز رو دو تا اتوبوس حرکت میکنه و می بیبی پشت سر اتوبوس آرام و با نگرانی قدم می‌زد. اتوبوس توی جاده در حال حرکت گشته بخونی امگینه توی حیات آرام آرام میشینه رو پلهها مجید توی اتوبوس مشغول نوشتن خاطره است بالاخره همه انتظارها تمام شد و من همکنون داخل اتوبوس به مسئله شیراز در حرکت می باشم من در شیراز پس از دیدار دایی و زندایی و پسردایی خود و تقدیم هدیه ها به آنان بلافاصله فاصله هم راه با دایی خود به آثار باستانی شیراز خواهم رفت. خطاب به پیرمرد کنار دستیش میگه بخشد آقا میگم شما تو آقا شیر آز رفته به حاله اه اون وقت بازار وکیلم ده بازاری وکیلم دیدم آها بازاری وکیل که از دو بازاری تشکیل میگردن بله مسجد وکیل چطور اونم ده مسجد وکیلم دیدم اه خوبه اماراتی که در مغرب نارنجستانه اون چطور اونم ده هست داره اخیم بله بیرونی چگی را که از نظری نقاشم و نبدکاری و چوبکاری و اینا ها ای چیزه سا خارده سی رازشتر اونم, اونم ده خوبه یه لیوانه آبی زمه تو آبه چه خبر نبا مجد با قیز به لیوانه پنچ آب نگاه نکنی همکنون یکی از مسافران درخواست آب کرد شاگرد راننده برای او آب بود من در حال حاضر تشنه نمی باشم ولی فکر کردم بعد نیست که آب خوردن توی اتوبوس را هم تجربه کنم. بخشه، یه لیموناد آب ده ده. دستان دارم. دادم خونک می باشه ولی لیوان و پارت چندان تمیز نیست تانندی اتوبوس در حال سپک درفتن از این میلیبوسه که جلوتن از اون را در حال حدکت در نیار برا چی بود؟ من بودم چی گفته شما؟ گفتم آرتیس بازی در نیار رانندی به طرف مسافر مسافر از سمیدیش برامشی روبروی رانندی نیست هیچ دورری مردم مختم چه چ میوس نقا متررم چ بر چه وارد نیستی که حالت نکار چه وارد مین این خدارت میره من برم برم بزنم بزنم عقب بود دقت نگیرم پسش نیام چه بری به د چه بری شما از بقیه چه بری بزنین ببینی دوست کار بکن چه خلهم نظری چه نه سر خاش دا بر خونه بارشهسینی حالتداری این تصمیم <تصفيق> برای با هر او در حین رانندگی یه ریز حرف می زنید. پونونزه سال یک دارم تو اینجا ددارم میرم و میام یک کشتم نداشتم وقت یادم از آقود داده تازه از را رسته میخواد رانندگی یادی من بده یه وقتی بود اینجا ده این قد پیچه و پیچه گردن گردنه خطرناک داشت که رانندگی تو اینجا ده دلی شیر می‌خواد. اما من میرفتم و میمدم اونم شب که مومی گارجا رزا شب رو ر اسمان ورده زونه همه بود مسافر به هم دیگه نگاه می‌کنه خب بابا بعد این همه سابقه و این همه معروفیت از دور داره دی آدم آه چی مکه او چه ردم مگه از این امروز نیستم که فرمونی بود تو, تو دستی تو دست من عین فرمونش تو دست بابا امطاری کوه والله بسجی یانم تو نمیتونی بر بیای کجا داره میجام ها اگه ناز خوشهر که بیچاره مریضیت پوشبری داره و گردش این بر اون بر بله اینا همه میتونن رانندگی تو جاده ده حسابش و داس آره دادا مجید اینا که افتادی تو که براش هم خیلی بزرگی هی میزنی رو چشمشو هی برمیذاری به جاده خیره شده اتوبوس نگه اینجا مغازه های صفات فروشی زیادی هست. مجد که ظرف و ظروفه صفادی مغازی ها نگاه میکنه ای دل من تو به حال تصوان میکردم فقط آثار هنری و صنایه دستی اصفهان بسیار بسیار می باشن در این شهر کوچک چقدر آثار هنری دستی فرامان یافت می شود خب دیگر این از سمرات سفر است وقتی انسان سفر میکند، به بی خیلی چیزها که قبلا بر او نمعلوم بوده است آگاه و مطلع می به واقعا چه آثار زریف و زیبای حیف است که منده دعایی عزیز خود را از این آثار دلنواز محروم کنه باید هر طور شده سوقاتی تازهی خریداری نمانه مجید یه ست سود ستک برمیداره یا <تصحنت> <تصحنت> بایم زن روشونهی مجید سلام اقا ماجید چطوری آمون؟ خیلی طرفو این طرف ها؟ یه چی اوتوبوس اونجا با من آمدنم یخت ازنی سوقاتی بله میخوام برم شیراز شیراز؟ خودت تنها بله دیگه شیراز چی کار آقا ماجید؟ چیلی میخوام منم یه سر به دای رزا بزن دای رزا؟ دادش بخیرد هنو شیرازه؟ بله آقا ماجید می‌دیشی چطوره؟ بله. خوب هست؟ خدا رو چی از این سوقاتی ها؟ ما؟ بله سوقاتی. بیا بریم. بری محمود. آقا, آقا کنار که کلی های چه اتفاق جالب. محمود یکی از نزدیکان ما می میباشن که بیبی بی همیشه از او تعریف می‌کنه. محمود آقا هم خیلی به بیبی بی احترام میگذارد من خیلی وقت است محمود آقا را ندیدم. و حالا از دیدار او بسیار خوشحال میباشم. چه دیدار خوبی خوب دیگر این هم از خوبی های سفر است که آدم ممکن است در یک شهر غلیب ناگهان یک آشنا را ملاقات نمایم. من با همین ماشین از اون سو که دیدی میبرم شیره کنی میبینی کارم اینه خب ببینم چیل را دارم این چه به دار دار دونی داشت کردم اینا ها بیا این دو تارا بیجید درست را دارم کنم آقا بفنم مسافر در حال سوار شدن به اتوبوسه ای و مجید دارست. کنار ماشین محمود آقا ایستاده و محمود آقا داره به مجید دو تا چراغ لامپا با پایه‌ی سفانی میده سوار شو آقا بفهمید یه چی یه چی دست بجین بیا بیا بیا بیا, بیا, بیا, بیا, بیا کار دارم آقا ما جی تعارف نکنون تعارف بزرگ چه نما بی چوبیده خانوم گاردنی من حق داره آقا محمود بیچاره پای نه واسه دلشو نمیدن آقا در اوتومس روانده با هم این با هم به گوابو مکنم موسیقی آمه یزیزم آمه یزیزمان شما که کار نمقرر مقرر مکرر بسرگیمیه بسرگمیشه موسافر <تصفح> داشتم چیزیم کار داشته اگه داشت و مسافره کار یا میخوای تلفون <تصفح> الان به من بگو تا تلف ساعت چی کارم میکنی؟ چی کارت میکنی؟ نادارست چا چی کار ندرگ بران شده یا نه نه بیا تا عرف نکن دو خطه رو اتوبوس بره آره برو برو چه به اتوبوس برسی سلام منو به دایره زحمت من برسون کش خدا خداحافظ شما فرق بلندی مسافر همچنان درگیره. مجید قبی به دست با سرعت به طرف <تصفيق> مجید داد می دوید دنبال اتوبوس. یکی از شراقه از دستش میفته. افته پرت میشه می یه بوشه دفتر رو مجید در حالی که توی دستش دفترشه و توی دست دیگش چران لام پایی سفاری در حال دویدن پشت سر اتوبوسه. نه خیلی. بر میگرده. میاد میاد همونجای که ماشین محمود آقا بود ای وای ماشین محمود آقا نیست اونم رفته مجید مستعسل مونده وسط جاده نشسته رو پله های بین را و مشغول نوشتیم خدایا چرا باید اینطوری؟ تو آیا من کار بدی کردم؟ آیا بیبی راضرو رو سحفر من نبود بیبی بی در حال آویزان کردن رخت و لباس روی بنده توی حیاتی. بیبی بی بی با صدای تقه نگران میشه؟ باث من نگاه میکن؟ مجید غمگین رفته تو فکر خدایا، حالا من در این شهر غریب چه بکنم؟ دیدار دایی، زندایی و بهروز لباس های خودم آن سوقاتی هایی که با آن همه علاقه خریداری نمودم ترشی بیبی بی با گلپر همه چیز نقش و راب شیراز بیش اما حالا با چروی به اصفهان برگردم به بیوی چه بگویم بگویم به آن همه سفاره شد شما باز هم گیج بازی در آوردم و محو آثار هنری اینجا شد خوب که فکرش را بکنی دیدار محمود آقا باعث شد که از اتوبوس دور شد و این اتفاق بیفتد نه دیدار خوبی نبود ماجی! آقا ماجی! چرا آقا محمود آقا ازا توبوس جا موندم ساکه با میگنی میخوایی به این شیراز چرا گفتم که منم میرم شیراز میبینه آقا مجید قسمتا بیا بالا بیا بالا ساکه ها چگاه کنم ساکه برات پیدا میکنم محمود بیا بالا باسم باید حرفم رو عوض کنم دیدار محمود آقا دیدار خوبی بود من همکنون کنار محمود آقا نشستم و مناظر اطراف را تماشا میده محمود آقا خیلی آهسته میرانند و حاصله آدم سر میرم اما از طرف دیگر اگر بیبی میدانست که من با محمود آقا سفر میکنم حسابی خیالش راعد میشد و دیگر دلش برای من شور نمیزد من بسیار ناراحت هستم به خاطر ساک خودم که جا گذاشتم یک لحظه از فکرام بیرون نمیروم. <يصفح> محمود آقا در حال رانندگی با لفتن در نگاه میکنه بیاست تو فکرش کرون آقا مدشون اون یا که با آخر نرسید است عزیزی من آقا آقا محمود شما نمیدونی من با چه مصیبتی این چهارتار نسوقاتی خیلی دارده بودم شما نمیدونی من با چه درده سری بیبی راز کرده بودم که این رو من بخیلی حالا چیکار کنم با چه روی ببرم شیوا ان شاء الله پیدا میشه متری خام پوسه نخر اگه پیدا نشو چیکارش کنم خب تا قسمتی چیزی بشه آقا متری اوه وا این قداز ناقیمتی تریش تو زندگی گم کنیم این قداز اینا قیمتی تری تو زندگی پیدا کنی، متری خام اوه وا اون خیلی بالا فایندره مجید خان خو اس تو فکنش بیرون آقا مجید اوه ماشین محمود آقا در حال حرکت توی جاده‌های کوهستانی زیباییه که به طرف شیراز می‌ره رس چه مسافرت با اتوبوس راحت تر است علی با ابو غروز همیشه هم مسافرت می‌کنه میشه میشه اوه این اینقدر با اتوبوس ها شیک پیچ مسافرت کنی مجید خان اوه این نه با به هواپیما و, و قطار مسافرت کنی آقا مجید استشمام درسته است نمیبونم درن چه یعنی بو کردم چیکر مگرم؟ آخه من درم مینبسم درم مینبسم من از همه چنون اوی شیراز را استشمام مینمایم اطمان <MXN2> درسته تو سواد داری من نمیدونم مگه شما سواد ندارین؟ آقا مردی محر را دیو را بگیرونم برات بخونه که رادیو دیو ندارد که؟ که برا همین است چه میدم با این ابو قرازم میشه مسافرت چرگوش شب بغولستان تن او شب بغولستان تن او منتظرت بودم تو چه بیا منتظرت بودم منتظرت از بود بودم، بودم همیشه هم هم سر بسر، هم منتظرت بودم منتظرت بودم از حالا تا فردا صبح منتظرت بودم منتظرت بودم باقیشم بلد نیستم آقا مجید منتظرت بودم خوبشا <تصفيق> باشد مدقا مدیدت شد بگوه ها؟ بله باید باید باید زم میشد مسافرت کرد رفت هم میگی؟ باید مسافرت باوانت محمود آقا خیلی کند پیش میرود محمود آقا خیلی سر سب و آهست رانندگی میکنند اما بالاخره حد چه باشد بهتر از این است که مجبور میشدم به اسفاهم برگردم حالا کنار جاده توقف کردیم و محمود آقا به ماشین خودش رسیدگی کنم آ چرا چای نمی‌خوری آقا مجید؟ حرت میشه؟ بیا. اما محمود آقا به من چای تعارف کرد و خودش برای تماشای مناظر اطراف از ماشین دوش محمود آقا میره کنار رودخانی آرامی که همون نزدیکیها جریان داره طرف محموده با محمود پس بریم دیگه چرا نمیری؟ میریم آقا مدید میریم میدونم دلت شیر میزنه ولی مدید خان آدم چه سفر میکنه؟ نباید همه فکرش این باشه چه حالا مقصد شیرازه کازرونه آباده فلان فلان حالا هر جا و همش توی این فکر باشد چه بگازو بتاز تا برسمونجا، اون وقت آقا مجید اوه ما خیلی بد نمیدیم خیلی هم بهت سخت میگذارد محمود خواند. آقا من مقصدم شیراز است مخوام برم به دایرزام یه سری بزنم بازاری و کیکست آزان متقاطع تشکیل می کردن. مسجدی باید که آز اهمیت و خنری می باشن امارت مدلل نارنجستان در مقام نارنجستان که از کاریو کاری و نمی دونم آین کاری و گچکاری و منبتکاری و چوبکاری و سندکاری و رنگکاری از این چیزاونه مقصد شیراز درست ولی برای این که تورا عذیت نشید برای اینکه تو وایستادن ها و تو معطل شدن ها و تو خرابی ها، ماشینا ها، تو جیر افتادن ها بهت سخت نگذرد آقا مجید باید فچ کن مقصد همین در این وقتی از چند در این چند آقا همین چند در آزتون در آن باشه بزین دنیا میگه سفر نیمیکن بیبی از بی با توی اتاقش در حالی که میل بافتنی و کاموا توی یه دستشه دشه سرشو تکه داده به رخت خوابهای چیده شده گوشی و اتاق خوابیده اون داره خواب میبینه یه پرنده یه جا دارن تو آسمان پرواز میکنن ماشین محمود آقا توی جاده در حال حرکتی محمود آقا کنار جاده نگه داشته محمود آقا یا تو زیاد بهش پرسده یا من زیاد گوزش کردم اینطور که معلومه است امشبه مهنو جاده. خب دیگر مسافرت با چنین ماشینی این دردسرها سرها را هم دار فعلا که در این سوز و سرما آتش کیف میده پس من هم مثل محمود آقا فکر میکنم مقصد همین جاست آتش و گلون. اون بقید یک کوپه بزرگ گون دیده میشی مجید با یه دست گون میاد کنار ماشین محمود آقا کبریتی روشن و رو به داخل گوند ها میدازه های آتش زبانه میکشن مجید و محمود آقا خوشحال و خندان هی hey, از گرمای شعله ها دور میشن و تاریک تاریکه محمود آقا در میگه یه بین راه میگم. میرن تو محمود آقا کتشو در میاری میره طرف دستشو چرا آقا محمود آقا کاک سلام علیکم شما, شما شام بخورین؟ با من حکوم در یک قهوه خانه بین راه نشستم و قرار است که به زودی شام میل نمایم حکوم محمود آقا رفت که مجید دستاشو میشوره و میره طرف صدا رفت که وضو بگیرد و نماز بخوانم خدایا آیا من به شیراز میرسم؟ گویا راه درازی تا شیراز نمانده است ولی ما امشب قرار از سین قهوه خانه بمانید. با این ماشین خدا میداند که به شیراز خواهم رسید من همکنون صدای تق, -تق و صدای یک آواز میشنوم. مرد قهوه خانی داره مشغول کوبیدن گوشتایی سیخ کبابه سیخا رو میبره طرف منقل مجید پشت سرش رو میفته خسته ناش نرمونده نه باشی که کجام بخشد آقا. تا شیراز خیلی دیگه مونده شیراز؟ به با... همینجا شیرازه همینجا؟ نه اینجا که نه یعنی از پوییم تر آها. شما بازار وکیل رو دیدن؟ بازار وکیل؟ با. معلومه که دیدم. ها، بازار وکیل دیدم. خب درسته که میگن از دو بازار متقاطع تشکیل میگردن؟ والله عور نمیدونم. چطوری میدونی بازار وکیل که از دو بازار متقاطع تشکیل میگردن؟ من فقط میدونم بازار وکیل بازار یه دراز همش دکونه از هر کی میخواد جنس های اونده بخره میره تو بازار وکیل میخره. اون شما امارت مجلل و زیبایی که در مقرب نارنجستان وجود دارد نارنجستان قوامو میگی فکر کنم آره نارنجستان قوامو وقتا میرفتم اگر خرابش نکرده باشن خیابون یا پاساج نشده باشه لابد سر جاشه جوانی هم گرفتی دادی بر باد خدا یاد داد و بیداد داد و بیداد بای تو این دنیا نصیبان غم تو کردی سزاید ای عزیزم با خدا باد بای آی همون بارون که بارون بحاره وای نشون از عشق چشمون مداره خدایا خدا یادا منم پرا به میشو میاد دیرون ز چشمونم ستاره محمود آقا پشت میز شام نشسته عینک آفتابی مجیدو میز روی رو چشماشو مجیدو صدا میکنه ارجی ارجی مجید حالا شما میزام میاد یا نه اوه ببینم چی <مرد> <تصفح> بود و مجید با اشتها و ولع مشغول خوردن بشن. یه می مرد جوانی یک کتی پوشی قرمه خوره داره می هم اینجا بیخواب شد دمه در اتاق نشسته و مشغول بافندگی عزیزی دارم خدایا تو چشمی پشت در دارم خدایا همه گوین عزیز تو می آید گل عمرم خزون شد که می آید به در قربت رو در وطن کن از اون شال قدر مارا کن صبح شده ماشین محمود آقا در قهره خانه دیده میشه چیزی نمونده صحابه ماشین تا اینجا اومده اگه بتونیم برسیمشتم یه تعمیرگاه و راستاری سش کنیم دیگه یا علی شیراز خب حالا که دیگه رای نمونده به شیراز ایت کرا رو خودم کنیم نه دیجه حرف از با هم اومدن با هم میریم محمود آقا کاپوت مشروع میزنی بالا بی بی قفص پرنده ها تو حیاط به میخ آویزون میکنی هی میخوبه به دیواره قفص رو میگه به خدا بخونی. بخونین بخونی دلم باش لخته برام بخونین دلم گرفته است وجود شما ما اگه دل نداره بخونین بخونین بگه ازازم در بیار سلم سر رفت از بخونه نازد یه چیزی بگوی پرنده ها آفاز بیبی غمگین بی میره لبه هوز شیر آبو باز میکنه ماشینو آوردن تعمیرگاه محمود آقا استارت زد مجید اون موقع نگران نشسته رضا رضا بزن بزن وا وا بلی بخاط بزنی آمار رضا قربلس رو آورد دستور بیاینم قرب بی استارت نداره رابی همو من نخوردی بذار ما نه هست به چی پرش کردی این روز نه نمی خواهی دست از سرش برداری؟ بارو با همون بندستی یه جایی بره خیلی دربود آخون کارش کنی اگه بتونم براد یک کارش بکنم شاید بتونید تو شیراز برید شاید اقول حفیظی بدیم نما من اینک در یک تمیگوه در نزدیکی شیراز نشستم آثار تاریخی و هنری فراوانی در فاصله چند کیلومتری من است و من اینجا هستم من منم دیگه میاد کنار من تو من خوب خود سر جنب کردم بهم این دفتره من تو خطی خوده دست آقاما بله بریچلا، بریچلا، چه خط قشنگی، چه خطی خوشی؟ بگم آقا محمود کاشکمیشد همین آلا بیرفتیم شیراز مدونیم بله تیتی؟ که شیراز نیزی کس میگه خوب چرا اینجا بی خود ما تل بشه؟ اوی شیراز آقا محمود بگه شما اجازه بده دا خودم میرم دو سوار میشم میرم خدای نکرده اومدیم و گم و گور شدیم قرارست گم و گور باشم شما فکرم یاد دون رفته باشد من خودم داشتم تنمه اون مسئلهش فرق میکن از اون گذشته آقا عزیز آدم نباد رفیقی نیمه را باشه ها سانه از اون نجب تو نمیخوای سچله پیدا کنی؟ چرا خب من باید با پیدا کنم من را با چه میدونم آقا آق از همه ای نا بذاشته نقصد تو همین جا محمود آقا باز هم حرف خودش را تکرام واقعا این جا به غیر از یک موش ماشین خراب و پاره و خیرتوپر چیزی برای دیدنه محمود آقا میره طرف ماشین مجیدم میره دنبالش یه ماشین میده نگه میده یه پسر همسنه مجید که کارگر گاز مشغول کاری مجید میده طرفش قاسلوش. ممنون میگم تو بازاری وکیلوی نه بازاری وکیل که از دو بازاری متقاطه تشکیل میگردن؟ مارتین آرنجستانه چیتا؟ نه اونم بایدی مسجدی وکیل چیتا؟ نه مسجدی وکیلم نهدیست مسجدی وکیلی که از نظر آثار و هنری حائز اهمیت میباشد شیراز که از اون ملک ایران باید افتخارش میگه تو بچه شیراز نیستی؟ نه من بچه خودستانم چند سال شیرازی؟ ده سال ده سال؟ خب تیم ده ساله آلا نتونستی به یه سریمه یه آساری هونر یزنیم ما شبه روز آخلای تعمیرگاه کار میکنه. خب در صورت خستاناش معموم مجید رفته روی پشت بام تعمیرگاه و داره به شهر شیراز که از دور پیداست نگاه میکنه ای به آثار تاریخی شیراز هست که از تعمیلگاه دور است یا به تعمیلگاه شیراز هست که از آثار تاریخی دور است. دیدم دور نمای در بام شیراز سلام آمد به بر سینه سلام شیراز از اینجا دو گمت که شاید مربوط به دو اثر تاریخی باشد دیده می شود همینو بست اما در عوض آثار غیر تاریخی زیاد دیده می شود. آثار تاریخی شیراز چون به بلندی ساختمان های غیر تاریخی نیست در آنها اصلا گم و گور شده است و شایسته است که مسئولین فکری برای این موضوع بکنن اگر افراد تاریخی میدانستند که این طور می شود، حتما آثار تاریخی را روی ستون‌های خیلی بلند می‌ساختن. تعمیرکار از زیر ماشین میاد بیرون و به محمود آقا میگه این زینو دا حقونه آه این زینو دا حقونه باید بری شیراز خواله اساس بستونی بیاید ماجه ماجه علی بله. اون بالا رفته ای چی کار رفتم چی رازه را ببینم یا پان بیا پای میخوام بریم شیراز بیا محمود و مجید را افتادن به طرف شیراز کنار جاده برای ماشینا ها دست کن یه نگه سوار باشن. قرآن رد شده وارد شهر شیراز شده و بالاخره این هم شیراز ای مجیدی که زائر شیرازی نه حالا بسید شما پیدا کنم اومدن دفتری تا بود تشویم شه شو مدیر دارش ده هم بود حالا آماله حالا آماله به بله بفرمایید این قاپ سیر ساکش تو اتوبوسی چه مالی شهری شما جا گذاشتید بله. ممکن است کنی برش براش پیدا کنی ببخش وحشی سلام علیکم بله اسپان وحشی <تصفيق> آقای شریفی بوشی گفتم این ساکشا تو اتوبوس کمال شرکت شما جا گذاشتید. ممکن است لوث کنین پیدا کنین. خیلی ممنون میشین. بلیط تن، از جیبش بیرون میاد. میده به مسئول دفتر. مال شرکت شما. ساکشا جا گذاشت. شیعنو اینا شیعنو لطف کنیم براش پیدا کنیم خیلی حالا هم باردارمون ایمدتی شیم باید وقت باید چی که آچان؟ هلی بیره تا فرد سو و... اوه تا فردا سب کنیم ولی قدمتون ارز کردم که هم باردارمون برید سده نه اینه یه کاریش بود عجله داره ارگولی زدن به سر قویدون زدن ده ده ده ده ده. خیلی معموم داره پیشیم اومدن انبار. افیس اپوچه رنگی بود یه ساکی توسیه از خطای سیاه داره دوتا جیوه همشتره مرد در حال نگاه کردن به ساکه روزن هم تو چیز ماه اونجا نداریم در آمبورم میبرم. ماجیت قان کی نوشید؟ یه دفعه رانندگی اوتبوس میبینی؟ تو ما رو گناه داشت کن، فیل در آمبور داغ داشت کن. پیچ کارت را تغییر میکنه باش دور نزدیک هر. نکنید نکنی میگم من مصاحبه شما بودم که. از اتوبوس جا موندم که هم توش بود. حالا اومدم ببینم ساکم کجاست. خب اونسا. ا، چون موقع با اون مرده دعوام شد که میگفت به با آرتست بازی در نیار که شما ناراحت شدین که دل شیر دارین و دا تو جادوی پیچو خم داره نمی ترسین. میگه شما آغار از شبرو نیستین. راننده به طرف انبار ناب ساجی کاری وارم. همیشه اینطوری نیست که ساکت پیدا بشه، حواست جمع بود. اصلا در حال بودا آقا ماجی پیدا شدنی بود چه پیدا شده اجنه پیدا نمیشه. اوه که تو چه قد جوزیدی. خب آقا ماجی من چه بخوام تو رو برسونم مغازه میبندم ماشینم هم اونزا میمونه بارو من اقوام هم اینجا بیا تو با هم بریم نه اقوام بزنید یه تکرار خودم تنرم چه را اقوام بخواد این که من یکی زید خوشی هموندست که برای اولین بار تنه میام مسافر سرابانه به دایرزم برسید چه باید رسی چه بده من مجید هره خورم شیرازده وقتی سری بهش بزرم آه. چهار تو نزید مجید برگه ی آدرس رو میده به مح هر خوبی، بعدی از ما دیدی؟ با سیمه اقصاد کجاست؟ با همین جا. شیراز؟ با که بازار بچیش متقاطست با. و محسلش هم ها از پس که برم اقل نهیه ماشین برد بی ای مجیدی که ظاهر شیرازی شیراز را به دیده دل بمیگرد به بح, بح. واقعا دیگر از این بهتر و شیرین تر نمیشود من همکتون باساک و کلی وسائل خود به هدایات در شیراز هستم و به سوی خانه دای رضا پیش می روم. چه خوب در شیراز بعضی از آثار تاریخی را در وسط میدان شهر قرار دادن تا همه چه علاقمند و چه غیر علاقمند تماشا کنند. اگر آثار تاریخی شیراز روی بلندی ها نیست در از خیابان ها را در کنار آثار تاریخی ساختن و اینسان همینطور که از خیابان ها رد می آثار می بینن به به سر یک کوچه یه تاکسی نگرد مجید از تاکسی پیاده باشه با آدرس نگاه می‌کنه و میره داخل کوچه. دروا می زنگ میزنیم از توی ساختمان صدای داد و فراد در حیات روی همه بسته نیست مجید میره توی حاط داد و فراد از توی اتاق مجید میری طرف اتاق کیلی پسه دادم تو. تو را بیرون አል می‌کنی؟ اگه می‌خوای با من زندگی کنی، باید حرف منو گوش گوش من نه نت می‌زنم، حتی. فقط قول می‌دم، همین. بیرون. برای چی نمی‌خوام. نمی‌خوام. یلا برو چرا مال دستم بده خجام اجازه تو با من دستتو بگیشم من تو دیگه با من چیکار بکنی خوارد منو بیچاره کرد؟ هر موقع میزنم منو ازیاد میکنی اونا بیدی خالت میکنم هر موقع میزنم کاش که آدم بشی بل میکن میری یه روز دو روز کنم خوارد, خوارد. حیادت میدن آخه چه فایده خوارد میدشونی فقط با کتل با داد، با فریاد من میخوام تو برم. آدم بشین نمیخوام تو این خونه تو اینطوری طوری بده. اگه قرار باشه اینطوری بخوای با من زندگی کنی من زن میام در باز میشه یه زنی جوان میاد بیرون عصبانی یه نگاهی به مجید میندازه یا دست خودش باز می‌کشام یا دست فامیلش بودن فامیل تو که برای من فامیل نذاشتی پ رو بارون دی از اینجا منزورشون همونام دایی‌شون سلام مجید بو زاده سلام مجید حالا چطور بیا تو بیا تو زن میری توی اتاق دیگه مرد نشستی گوشی اتاق یه چارم گوشی اتاق کنار داییه مجید میشه دائی بد جوری معذب و شرمنده به نظر میان مجید بیبیشت واره سلامی رسی شیراز که رسیدی؟ رسیدش داشته یه دو سه صد پیش با آقا محمود آقا محمود چال درانی ها؟ رسیدیم بعدم امدیم رفتیم گاراژ تا کمیه یعنی سایکم تو توزچه ها بود و من خودم از توزچه ها دیگه الان با آقا محمود چال لرنه رفتیم گرفت و آقا محمود گرفتم کونه پیاده شدیم بختم پیاده شدیم و اومدم همه احنا رسیدم خیلی هم بدون سلام رسوند و گفتش که آدرسم گرفت گفت اگه وقت کردم بهشون بدون سر بله میتره بله راستش داشت هم میخواست پا هم بیا ولی خب گذش که سرد هوا و اینا یا وقت پامو و کهارای اینا بگیره دیگه نایمه بله شیراز دیرنا. که راستیدی؟ راستیدم دایی جون بیا دوستاده ساعت دیشم خوبه بیبینی؟ بله بی؟ وجید دست میکشه رو سیمایی تار دستتو میشکنم دایی با عصبانیت بلند میشه از اتاق میره بیرون به طرف اتاقی که زن توش هست تو حیات رو پله ها میبونه مجید ناراحت از اتاق میاد بیرون ساکشو برمیداره بر میداره. دایی داره تو حیات را میره میشینه رو پله ها مجید ساکو میبره توی اتاق سوقاتی رو از ساک بیرون میداره جبه یک از میگیره جلو روی دایی بیر بز کجاست مادرش دایجون بفن مادرش شیرین کنم نمیخوام دایجون نمیخوام دستم او کتا نکنیم بفن نمیخوام دندونم درد میکنم خب این چوب سیگار با زیر سیگاریه برای شما آوردم بفهم نمیخوام دایی جان ترک کردم ترک کردم دایی جون سا ترک کردم دایی نمی‌خوام ترک ببینید قلاغ دارید آب دارید سسپل داره درخت در در در در در در در... در... ترک کردم ترک کردم ترشی بی بی, بی برادون ترشیام درست کردهسا در گل ریخته است که دوست من نمی‌خوام مجید با جبهه یکی از اومده توی اتومبیل زندگی اونجاست نمی‌خوام دایی دمپایی رو به طرف زندای می‌گیری خب اونم پارتو بودی هر چی دلش میخواد به من میگه اون از خونه بادش این از خودش منم به چی چی خوش کنم بعدش که نیستم که میگم به فان شیرین کن با این چیزا دیگه شیرین نمیشه قد تلخ است بس برام راحت کنه هر او... چی دهنش در داره به من میگه یا اینا... او برای میکنه. شما آوردن برو شما یعنی نندازه دوست سر قبل تشم دیگه ازش. زن عصبانی هیچ اعتنایی به مجید نمیکنه ق فکر میکنه چه تاجی به سرم گذاشته اینجوری با من رفتار میکنه چی چی دارم تو این زندگی جز این خه به تو آشغالا مجید دمپایی زندایی رو میزره دم در اتاق زندایی عصبانی از اتاق میاد بیرون لباسش از رو بندجر میکنه مجید نراحت این وسط مونده میره طرف دایی زن ساک به دست و چادر به سر از اتاق میادی رو میره طرف در حیات ها هرچی داری جمع کن برو هرچی داری شاید. چون دیگه بر نمیگردی به همین خیال باش که دیگه, بعد برو. رو دیگه بر نمی برو برو چون دیگه بر نمیگردی. ببخشید دایی جون ببخشید فوزنه میکنم ولی بله خب یعنی برادون مهمون و دستایی جون در که کار آدم ها نیست که آقل آقل نیستم دایی جون اگه عاقل بودم که اینقدر سب نمی کردم اینقدر تحمل نمی کردم. همون سال اول خاک به سری من کنند دایی جون خاک به سری من کنند دایی جون بخ... اَه داری میری کجا میری؟ چمدون برامون بستی. کجا من برات میارم ها خونه به خاطر من چون میمون که قهر نمیکنن که. داز شما چیز بگین یعنی مهمونی. زندایی رفت. باش دو هم برگردم داییم رفت مجید تنها مونده وسط حیات سوت سوتکش رو از جیبش در میاره و شروع میکنه بزنم جید توی اتاق آینه رو که سوقاتا آورده میذاری توی تخچی اتاق شیشه ترشی رو میذاری کنارش چراغلمپای سفالی رو میذاری این آینه زرب زنخانه رو بیرون میره میذاری کنار ستاره داری میلهای باستانی چوبی کچونو دمپایه زندنی و بسته ایفگز میذاری توی تخچی او همه اینا رو خیلی قشنگ و با سلیقه میچینه کناره مجید توی ماشینه دایشم کنارشه دارن از توی خیابان‌های شیراز رد میشن اونا از ماشین پیاده میشن اومدن ترمینال مسافر باده باید هم نمیخواستم این طوری بشه خیلی نور مرد شما طور هدایی اینقدر من بیام شیراز و هم بیاریم آثاری باستانی شیراز رو ببینید راستی؟ بایی جون پهروز کجا این میخواستم بپرسم یادمه ای بایی پهروزم رفته خونه خوالش بایی جون خونه مجید دست دشه دایی به همشه دلیجی دایی دلیجو دو